افسونه افسانه به نام خدا، سالا افثانه ها و ها قدیمی ترین میراث فرهنگی بشرند که با خوندن و شنیدن اونها ما با زندگی و افکار نسل های گذشته و بسیار قدیمی بیشتر آشنا میشیم ژاپن گنجینه قصه ها و افسانه ها از چند هزار سال قبل پدران و مادران ژاپنی برای فرزندانشون قصه و افسانه گفتند و این قصه ها و افسانه ها سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شدند خب دوستان میخواییم به ژاپن سرزمین شکوفه های گیلاس بریم و افسانه یا از این سرزمین تقدیمتون کنیم افثانهی به نام مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد. با ترجمه از اردشیر نیکپور امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببریم سی روزگاری در سرزمین شکوفههای گیلاس رود پرپیچ و خمی در دامنه کوه بلندی جریان داشت که در دو طرف این رود دو خانواده زندگی می کردند خانواده بالادستی و خانواده پایین دستی خانواده بالادستی آدم های و حسودی بودند و خانواده پایین دستی برعکس آدم های ساده و خوشقلبی بودند که همیشه دلشون میخواست به دیگران کمک کنند روزی دو مرد خانواده برای سید ماهی به کنار رودخونه رفتن و طورهای ماهیگیریشونو توی رودخونه انداختن و مشغول صحبت شدند اگه امروز این رودخونه لعنتی یه مقداری به من ماهی بده میتونم تا آخر هفته چند بار ماهی سوخاری بوسوس خردل بخرم رودخونه ها همیشه مایه برکتن رفیق <تصفح> مایه برکت چه برکتی الان دو ساعت اینجا نشستم اما دریق از یه بچه ماهی ولی رفیق هر چیزی راحت به دست نمیاد اما من هر چیزی رو را راحت میترسم برای به دست آوردن هر چیزی باید صبر کنیم من اهل وقت طلب کردن نیستم همین الانم کاسهی صبرم تموم شده اصلا دوست ندارم تا قروب اینجا بشینم و زل بزنم به رودخونه و منتظر یه ماهی لعنتی بمونم من که دیگه اوصله اینجا نشستم و ندارم بهتره تورامونو توی رودخونه بذاریم فردا دو سراغشون بگرد نظره چیه؟ ام... فکر بدی نیست آره بریم فردا صبح بیام سراغ تورامون اینجوری فرصت داریم به کارای دیگر هم برسیم کارای <تصفح> دیگه؟ رفیق تو کار کردم فاصله نمیشی؟ من که میخوام تاثر استراحت کنم چای بنوشم و به موسیقی های شاد میشم. موسیقی های شاد؟ ولی من بیشتر دوست دارم به موسیقی های ملائم دوش این کار به آرامش آرامه شده اوکی اینطور خب رفیق کاشم باشه بریم که دیگه انتظار فایده نداره. باشه. بریم. ماهیگیر قرار گذاشتن به خونه هاشون برن و فردا صبح به سراغ تورهای ماهیگیریشون بیان تا ببینن چه اتفاقی افتاده فردای اون روز قبل از طلوع آفتاب مرد بالا زودتر از مرد پایین دستی از خواب بیدار شد و سراغ تورش رفت تا ببینه سیدی در دامش افتاده یا نه مرد وقتی تورشو از آب بیرون کشید دید تورش پر از ریشه و شاخه هایی بود که جریان آب اونا رو با خودش آورده بود مرد بالادستی با عصبانیت تورش رو به گوشه انداخت و زیر لب شروع کرد به قرولاند کردن صوت <تصفح> خونه یه معلوم نیست این ماهیه لعنتی کدوم گوری رفتن بلا من دست خالی چجوری برگرده کنه اصلا دیروز و این روز بد شانسی من بود رودخونه بیبرکت منو ببین که دلم برای مایسو خالی با سس خردل ساگون زده بارم ماهیه لعنتی این شیزو عجب شانس بلندی داره انگار همه برکت رودخونه توی رو اون جمع شده اون وقت من اه. ماهیه لعنتی همه جمع شدی تو تور اون. نه نه این انصاف نیست باید تسرکلی اون پیدا نشده یه فکر نکنم نه چکا کنم آها باید تو با هم عوض عبست... آره این فکر خودیه مرد دستی فوراً ماهیا رو از توی تور مرد پایین دستی بیرون آورد و در دام خودش ریخت و به جای اون ریشه ها و شاخه هاییو که در دام خودش افتاده بود در تور مرد پایین دستی ریخت و با سرعت از اونجا دور شد و به طرف خونش به راه افتاد آفتاب تازه تلو کرده بود که مرد پایین دستی بی خبر از همه چیز به سراغ تور سیدش رفت و وقتی دید چیزی جز ریشه و شاخه های درختان در تورش نیفتاده نامید شد و گوشه نشست و به صدای رودخونه گوش سپرد اما کمی که گذشت با خوشحالی با خودش گفت چه هیزومای خوبی با این هیزوما میشه روزای گرمی داشته باشیم بله اینا را از توی تو هم در میارم و هم میزرم تو آفتاب تا حسابی خوش میم آفتاب تیز خیلی زود ریشه ها و شاخه های خیس و خشک کرد و مرد پایین دستی تبرش و برداشت تا اونا رو بشکنه. اون کنده بزرگی رو جلو کشید و با اولین ضربه‌ای که به اون زد، کنده از وسط دو قسمت شد و یک دفعه سگ کوچولوی پشمالویی از توی اون بیرون پرید و روبروی مرد ایستاد و شروع کرد به واق واق کردن. مرد پایین دستی متعجب به سگ کوچولو خیره شد و بعد با مهربونی خم شد اونو در آغوش گرفت و به طرف خونش حرکت کرد مرد پایین دستی به نزدیک خونه که رسید زنش به پیشوازش اومد و از دیدن سگ کوچولوی پشمالو به حیجان اومد وای خدای من شینزا چه سگ ملوسی این از کجا بردی عزیزم آه هنیکا قصه اون طولانیه میبینی چقدر خوشگله بره آره، آره، ما اونو برای خود بود نگه میداریم ما که بچه نداریم حد اقعا سرون این حیونه ملوس خوشگل گرمیشه و از تنهایی در میاد این شینزا البته البته خب حالا بریم, بریم تو بریم تو تا قضیه این سگه برای بله دوستان، مرد پایین دستی قضیه پیدا شدن سگ کوچولوی پشمالو رو مو به مو برای زنش تعریف کرد و زن با مهربونی مقداری شیر در ظرفی ریخت و جلوی سگ پشمالو گذاشت. سگ پشمالو هم روز به روز بزرگ و بزرگتر می شد و در اندک زمانی به سگ بزرگی با چشمان درشت و نافذی تبدیل شد. یکی از روزهای سال مرد پایین دستی قصه رفتن به جنگل داشت در این موقع سگ پشمالو جلو اومد و روی دو پای کوتاهش ایستاد و به مرد پایین گفت پدرم امروز منم با تو به جنگل میام آه، چی چی آه، تو تو حد میزنی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 اون به من گفت مادر جون به منم گفت پدر جون پدر جون سود تر به تر از راق من بیمیان این اون درست بزن ما حرف بزنه من چقدر خوشحالم خدای خدایی خیلی خوش مادر جون میشه زود یه چیزی برای نارمونو آماده کنیش البته البته از زن میشه البته چند تا نون توی بخشمو بذار اون بیلو کلنگم بیار من و پسرم میخواییم یعنی الان میرم نون بری میارم الان میرم میارم ددادی نون برنجی در بخچه گذاشت و به دست مرد داد و بعد اونا رو تا آسانه در بدرقه کرد مرد و سگ پشمالو در مسیر جنگل به راه افتادند و کمی که راه رفتند سگ پشمالو نگاهی به مرد انداخت و گفت بایدار تو, تو خسته شدی بیلو کلنگو تو من پشت من من میالا تو سق بهرمونی هستی اما این تو خیلی سنگینه نه نه نه نه من, من و نیرو من دیستم ولی م... پایین دستی و سگی پشمالو به انتهای جنگل که رسیدند نفس مرد به شماره افتاد سگی پشمالو ایستاد و در چهره خسته از عرق اون خیره شد معلوم خیلی خفصه بود. بیا پشت من چی؟ سوار شم، اونم پشت تو نه سکه مهربون بود من برای تو خیلی سنگینم کمر تو زیر سنگینیه و من میشکنم. ولی من سگ قبل من روماند رویستم اگر حالتای ما باور نداریم میتونیم امتحان کنیم خب دیش بکر اما فقط برای یه سگ پشمالو دومشو تکون داد و مرد آروم و با احتیاط پشت سگی کوچولو نشست و یک دفعه سگ پشمالو مثل پرندهی تیز پرواز در آسمون بی سرزمین شکوفههای گیلاس اوج گرفت. مرد از تعجب زبونش بند اومده بود و کمیم ترسیده بود، سک پشمالو آروم پایین اومد و مرد از پشت گرده اون پیاده شد پدرجون بگذار اینجا اینجا چی شده؟ بیلو کلنگ بردار زمین بکنم آمانو بری پسرم ما اومدیم هیزان جمع کنیم نه اومدیم برای کندن زمین آهش بگذارم پدرجون زمین رو بکنم خیلی خوب باشید سکی مهتم مسکتو آمیه سفته ولی شما میسی دای چیو رفت آمد بده فرات اونجا چه چیزینم بود ها ها ها پسو بزن کلام زود باش یه کوزه یک کوزه قدیمی اینه میرمی توی برای مهتر این پدر داری خدای من خدای من این یک کوزه برای سکه سکه های تلا سکه های تلا ممنونم ممنونم سگه مهتر بودم ممنونم بله دوستان مرد پایین دستی با خوشحالی کوزه پر از سکر رو توی سبد سگ پشمالو گذاشت و دوباره بر پشت اون سوار شد و باز هم در آسمون آبی سرزمین شکوفههای گیلاس به پرواز در و ساعتی بعد به خونه رسیدن بلاخره <صصف> <صف> <تصفح> اومدی؟ دیگه داشتم نگرام می شینزا، ببینم این کوزه قدیمی چیه این یه هدیه با ارزشه خیلی با ارزش هدیه با ارزش؟ از طرف بکی از طرف من مادر جم برای بهترین پدر مادر دونگر اگه بدونی توی این کوزه چیه توش چیه همه دیالا یه لسه باش که ببینم تو چیه یا اینم یک کوزه پر از سکه های طلا <تصح> خدای من اونا اونا واقع سکه های طلا؟ <تصح> البته که دلان. طلا تلال خالص خالص <تصح> <تصح> بیا بیا, بیا, بیا, بیا طلا؟ <تصح> طلا. <تصح> خدای من اونا با سکه های طلا. بیا اون دارو بشت منی بیا تو فکر میکنه اونه چند چونها ست سو دیویستا خدای شادم بیشتر. شیمزا عجیزم زود بازید باشون دارو بشت <تصح> من <بقید> همزایه <بقید. تصح> حامسه ی من اومدم اومدم تا گرسنه‌ت برای امشب قرض بگیره با خدا با من وای وای خدای من این همه سکه حالا خودو بدی زن ساده پایین دستی هم با سادگی تمام ماجرا رو برای زن همسایی بالدستی تعریف کرد زن همسایهام هم دوان دوان و با سراسی میگی به خونش رفت و اون چرا که شنیده بود برای شوهرش بازگو کرد و بعد از شوهرش خواست تا به خونه همسایه پایین دستی بره و سگشون رو برای یک روز قرض بگیره مرد بالادستی در حالی که حرص و طمع و حسادت تمام وجودش رو گرفته بود فوراً به خونه همسایه رفت و سگ اونا رو برای یک روز به امانت گرفت. بله دوستان، فردای اون روز مرد بالادستی سبد و بیل و کلنگی و آماده کرد. سگ پشمالو هم در مقابل اون ایستاد. امروز من همراه تو با... با جنگل میام البته که باید یه سگه احمق پس خیال کردی من که تو را امانت نگرفتم که نگات کنم حالا را بیافت زود باش را بیافت <تصفح> چرا داری منو برو بر نگاه میکنه کنی آ؟ مجه با تو نیستم سگه تمبل منو سوار کنو را بیافت با به حال حیوانی به این تنبلی ندیده بودم پشمالو که از رفتار مرد همسایه ناراحت شده و از درد ناله میکرد با دل سردی مرد رو بر پشت خودش سوار کرد و راه جنگل رو در پیش گرفت اندک زمانی بعد سگ پشمالو مرد بالادستی رو به زیر درختی تنومند رسوند و مرد با چابکی از پشت اون پایین اومد همینجاست <تصفح> <تصفح> بوزه تلا همینجاست اینجا هست اگه با تو نیستم تاگه نه گفتم بوزه های تلا هم زمین لعنتی که قصد شفت خسته شدم های سر یه تا کی باید زمینو بکنم از کون گوزه های تلا ها, ها؟ خوبینامونده هدامه بادم سوال خوب اینام یه شدم خودشه گوزه تلا حالا حالا بادم خاکارو بزن و رو بیار اینم کوزه پر این آلاوی هر زات آتش حل شده تو کوزه پس سکه های طلا کجان ها سرگی درو مگه با تو نیستم گفتم این آتش خلاص چیه تو کوزه ها بابا نمی‌دونی نمی‌دونی حالا دیگه منو مسخره می‌کنی ها صبر کن الان نشونت می‌دم Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. بلدستی از شدت خشم و عصبانیت بیل و بر سر سگ بیچار کوبید و حیوان بینوا آهی کشید و افتاد و مرد مرد بلدستی با بیرحمی تمام سگ پشمالو رو همانجا تنها گذاشت و با پای پیاده در حال که زیر لب قرولند میکرد به طرف خونش به راه افتاد صبح روز بعد به محض طلوع آفتاب مرد پایین دستی برای پس گرفتن سگ پشمالو به خونه مرد بالا رفت مرد همسایه بالا با دیدن مرد پایین دستی پیش دستی کرد و با عصبانیت گفت تو هم همدست اون سگ عبله و تنبلی چی شده؟ این چرفیه که میزمی؟ سگ من کو؟ سگ تو؟ منظورت همون سگ تمبل حقوازه؟ اون سگ مسخره منو بی خودی تا جنگل چشوند و بهم به کلک زد. منم آه،, آه تو چی؟ اون کجاست؟ سگ من کجاست؟ صدا تو بیارم این. همین که گفتن اون به من کلک زد منم حقشو گذاشتم که به دستشو اونو با یه ضربه فرستادمش اون دنیا. چی؟ تو تو چیکار کردی؟ چی؟ فرستادمش اون دنیا. اوه سگ بیچاره. تو تو حق نداشتی سگ منو بکشی اون سگ مهربونی بود نه <متصفيق> ربون <متصفيق> <متصفيق> بله، مرد بالدستی اینو گفت و بعد با خشم محکم در خونش رو به روی مرد پایین دستی بست مرد پایین دستی دلش از این همه بیره می گرفت و با چشمان اشکبار به خونه رفت و ماجرا رو برای زنش تعریف کرد اونها دقایقی برای مظلومیت و وفاداری سگ پشمالو گریه کردند و بعد با هم به جنگل رفتند و جسد سگ پشمالو رو به خونشون آوردند. مرد جسد سگ پشمالو رو در باخچه حیات به خاک سپرد. زن هم در حال که عشق می ریخت شاخه بید سبزی و روی گور سگ پشمالو کاشت. چند ماه بعد مرد و زن پایین دستی از دیدن شاخه بیدی که بر گور سگ پشمالو در بود به حیرت افتادن بله شاخه بید به درخت بزرگ و تنومندی تبدیل شده بود و سایه اون تمام حیاتو گرفته بود در یک بعد از ظهر پاییزی طبق معمول همیشه مرد به زیر سایه بیده تنومند رفت تا چرتی بزنه که مرد چون خسته بود خیلی زود خوابش برد اون توی خواب سگ پشمالو رو در برابر خودش دید پدرجون پدرجون بلند شد تو باید عرب یا این درخت تنون من در بید و ببری و از تنه اون هاونی برای کوبیدن برنج بساز بدر چون سفارش سگ پشمالو درخت بید و برید و از تنه اون یه هاون محکمی ساخت و اونو داد به زنش زن هم به آشپسخونه رفت و مقداری برنج توی هاون ریخت و با دست هاون شروع به کوبیدن برنجا کرد با اولین ضربه مقدار برنجایی که توی هاون ریخته شده بود دو برابر شد و با ضربه بعدی مقدار برنجا چهار برابر شد زن با تعجب دست از کبیدن برنجا کشید و شوهرشو صدا زد شیزا شیزا عزیزم زود باش بیا اینجا اینجا نگاه کن وای خدای من آه، شیزا آه، چه این... اتفاقی افتاده این هاون جادویه نگاه کن چی؟ هاون جادویه؟ آره آره من بره جتی هاون دارم میکنم بیا نگاه کن خوب نگاه کن برنجا دارن چند بار بر اوه خدای من این هاون باقید آنچه ادويه. آره آره چه ادويه. بذم آن. به من ها به نو بیا بیا بیا کن چه ها به رنج. مات داریم دیگه که ماش نر آن باید بیشتری به دنیا خودش رو گاه میگیره مال این همه برنج بگرد همون برنج رو این شالی سارای دهگه رو ریخته باشن اینجا ببینم شما این هم برنج رو از کجا بودین میدونی چند روز پیشمون شاخه بیلی که کاشته بودیم اون یه دفعه به یه درخت تخن و بله یاران، این بار هم زن پایین دستی تمام ماجرا رو مو به مو برای زن همسایی بالدستی تعریف کرد. زن بالادستی هم بدون معطلی خبر حاون جادویی و به گوش شوهرش رسند و چند دقیقه بعد مرد همسایی بالدستی برای امانت گرفتن حاون به در خونه مرد پایین دستی اومد. زن و مرد پایین دستی که در عین سادگی قلب مهربونی هم داشتن به راحتی هاون جادویی و به رسم امانت به اونها دادند مرد بالدستی به محض ورودش بخونه فوراً به زنش گفت آهای زن بیا زود باشه یه برنج بیار بیا بیا اینم برنج باید تموم انبارامونو پر کنیم وای خدای من خیلی حیجان انگیزه امشب یه پلوی خوشمزده درست میکنیم چه عطری داره بکو بکو ببینم ساکت شو وای مگه من چی گفتم فقط داشتم میگفتم که برنجش خوش عطبوه برنجا برنجی که توی این حاون لعنتی نیخته کم شده ها بذر ببینم کم شده ما این امکان نداره ببین با هر ضربه که می کوبم برنجه بجه که بیشتر بشه کم كم و کمتر میشه دست نگهتار دست نگهتار اینجوری همون مقدار برنجه هم که داریم از دست میدیم از اولشم هم میدونستم این هاون مسخره هیچ برکتی برای ما نداره درست مثل اون رودخونه و سگ لعنتی حاون لعنتی این حوانه لعنتی فقط به درد سوزندن میخوره بهتر اونو بندازیم توی بخاری آره فکر خوبیه حداقل اقل با هیزمون یک کلی گرد میشه آره زود باش بندازش توی تنور بله اونا که سخت عصبانی بودن هاون و توی بخاری انداختن و چند دقیقه بعد از هاون جادویی فقط مقداری خاکستر مونده بود و دیگه هیچ فردای اون روز زن همسایی پایین برای پس گرفتن هاون جادوییشون به خونه همسایی بالدستی رفت زن همسایه با نگاهی از سر خشم و عصبانیت به اون گفت هاون مسخره او فقط به درد سوزندن میخورد و ما هم این کارو کردیم چی؟ شما هاون ما رو سوزوندین؟ البته که سوزوندیم. اون یه هاون مسخره به درد نخور بود. اون هاون لعنتی هیچ سودی برای ما نداشت. اون هاون بلنجه ما رو زیاد که نکرد هیچ. کم مونده بود یه مقدار برنجم که داشتیم از دست بدیم. ولی اون یادگار سگ مهربون ما بود. دیگه اسم اون سگ باز مسخره رو نیار. میشه میشه یه کمی خاکستر اون هاون رو بردارم. ها خاکستر اون هاون به چه دردت میخوره. اون برای ما با ارزشه. ما میخوایم خواهی سر اونو به عنوان یادگاری نگه داریم یادگاری برو برو ارچی درد میخواد از این خاک که بی ارزش بردار برو <تصفيق> زن پایین دستی دامن لباسشو از خاک سرهای بجامونده از حاون پر کرد و از خونه همسایه بالا دستی بیرون اومد زن به حیات خونه خودشون که رسید شوهرش شینزو رو دید که در گوشه حیات بر گور سگ پشمالو نشسته زن به نزدیک اونکه رسید نسیم نسبتاً ملایمی وزیدن گرفت و مقداری از خاکستر رو به اطراف پراکنده کرد و ذرات خاکستر به آرومی بر درختان خزانزده حیات نشستند و در یک لحظه درختان خالی از برگ قرق شکوفه شدند. زرا مرد با دیدن اون همه شکوفه‌های های زیباب و رنگارنگ به حیرت افتادند وای خدای من شکوفه هنم تو این فصل این معجزه است مجزه ای سرای سهرامیز در رو شکوفه بارون کردن باید یه مقدری از این خاک سره سهرامیزو برای حاکم منطقه ببریم و با اونو پر از شکوفه آره آره تو درست بگی شینزا فکر خوبی هستیزم اون حتما تحجاب میکنه و پادشه خوبی به ما میده آره بله دوستان زن و مرد پایین دستی مقداری از های موجز آسا رو توی یه شیشه ریختند و به قصر حاکم رفتند جناب حاکم باعث افتخار ماست که هدیه با ارزشی به شما تقدیم کنیم حدیه؟ چه <تصفيق> جناب حاکم همونطوری که همسرم گفتن ما برای شما یه هدیه موجز آسا بودیم که حتما باعث به شما میشه خب این هدیه کجاست؟ قربان اینجاست؟ تو این شیشه، تو این شیشه محضور تو این خاکستره؟ آه، بله، آه، بله، ولی این یه خاکستر معمولی نیست اون موجزه میکنه موجزه؟ چه موجزه؟ قربان، این خاکستره همه یه درختان باقی شما رو پر از شکوفه میکنه اونم شکوفه های شکوفه؟ اونم توی فصل پایی؟ بله بروان حالا اگه چه من همین الان مقداری از این خاک سرها رو روی درختای باغ میپاشم اون وقت خودتون با چشمای مبارکتون محجزه این خاک سرهای سهرامیزو میبینید بپاش بپاش بپاش بپاش <تصفيق> بپاش خدای فرد چه شکوفای زیبایی شما کار خارخود از انجام دهید شکوف اولم تو پایی قربان من عرض کردم این خاک سرها موجزه می و میدونستم که باعث شگفتی و خوشحالی شما میشم بگیم دو بیدن. شما در مقابل این کار خالق و دادتون چی از من ما چیزی نمیخواهیم جز سلامتی و طول اون به شما بله جناب حاکم قصد ما فقط خوشحال کردن شما شما آدم خوب و مهربانی از رید. ولی من دوست ندارم شما دست خالی از اینجا برید پادش شما یک دست جامعه 9 گرم به هست و پادش شما بارو. یک طاق پارچه زیبای عبریشم خالص مناسبه کیمونو بله بله های سنچو اله برمن در خدمت هم برمن خورن هدیه نفیز برای زن مرد مهربان آماده بسیار سپاس گذاریم جناب های که سانچو خوشی سنچو زود تو زن پایین دستی با خوشحالی باغ حاکم را ترک کردن و به خونشون برگشتن هنوز وارد خونه نشده بودن که زن همسایه بالدستی جلوی اونا اومد اه او چه خوب شد اومدین میخواستن یه کاسه برنج ازتون قرض ب. اه اه اه چرا رو ببین خدای من چه پاشه گرون قیمت جی چه لباس قشنگی اونا باید خیلی گرون قیمت باشن نه اینطور نه بله بله البته که گرون قیمت ها. ببینم شما اینان از کجا آوردیم اینا هدیه جناب حاکمه حدیر جناب حاکم هره. به چه مناسبتی؟ بیا بریم توی خونه تا برای تو بریم بریم بله دوستان، زن پایین دستی با خوشحالی و از روی سادگی تمام ماجرا رو برای زن همسایه بالادستی تعریف کرد و زن بالادستیم بعد از شنیدن ماجرا در حالی که حسادت و حرس و تمام همهی وجودش رو گرفته بود با قدم پرشتاب به خونش رفت و ماجرا رو برای همسرش بازگو کرد چند دقیقه بعد هم زن و مرد تمکار خاکسترهای مونده از هاون و در کیسه کوچیکی ریختن و یک راست به سراغ همسر حاکم رفتند. همسر حاکم به همراه ندیمهاش در باغ در حال قدم زدن بود، مرد و زن بالادستی با احترام به اونها نزدیک شدند. بانوی بزرگ بار. ما اومدیم تا باقی خزان زده شما رو غرق شکوفه کنیم. اون هم شکوفه های زیبا و رنگارنگ شکوفه اونم تو پای؟ ها البته بانوی بزرگوار البته شما مطمئنید قدرت این کارو داری؟ البته بانوی بزرگبار. البته اه بانوی من ما به عنوان هدیه باغ خالی از برگ شما رو پر از شکوفه میکنیم و باعث خوشحالیتون میشیم خب شما چطوری میخاین این انجام بدین؟ با این خاک سرای معجزه بانوی وانوی بزرگ باور کنید در عرض چند ثانیه همه درختان پر از شکوفه میشن آه من های درختان رو خیلی دوست دارم اونا برای من خاطر انگیزم زود باشید، باشی. از بزرگ چیشم؟ چیشم؟ چیزی رو نمی بینم. چیشم؟ من می تونی من یکی به دادم با سیده فریاد همسر حاکم چند سرباز از گوشه و کنار به باغ اومدن اونها رو کشون کشون به طرف زندان بردند و هنوز که هنوزه این زن و مرد تمهکار و حریص در زندان تمه خودشون اسیرند و راه گریزی ندارند شنیید شنیدید افسانه‌ای از سرزمین ژاپن بود با نام مردی که درختان و پر از شکوفه می کرد. این افسانه از گروه افسانه‌های های تمثیلی بود که از قدیمیترین و رایج ترین انواع افسانه‌های شفاهی به حساب میان و در بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. افزانه مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد تنظیم برای رادیو زینت ساله پور راوی محروخ افزری بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی دریایی، احمد گنجی، منا صفی، ایوب آقاخانی. نگین خاج نسیر امیر زنده دلان ناهید مسلمی کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار حیدر صفداری. کننده زهرا بدالله زاده افسان ها رنگی از زندگیاند افسن زندگیتون، نشین و مانا تا افسانه دیگر به